نمی‌خواد ضرورتی نداری. اولا همیشه بهترین نوروز رو میکنه. که بهترین اتفاق بیفته هر کارو دیگه. بدون شرط اصل آب می سلام عرض کردم سری به نمیزنیدو. نمیزن ما نمیزنید و احوالی از ما نمیخواید چوسه قجری نمان میاد روی سر صد شد بار آدماتون توقیف هستند احوالش چیه دو رادیو جوی احوالاتون هستم خبرای ویژه ترشتی هست ما بعدش دیدم زیاد وقتتون رو نمیگیرم این آقا ابو حسن خان خوشوی پوس خبوزه است امروز وفادار فردا رفتنیه سلا در اینی که زیاد باش آتی نشی از نهتون خوشبخت شدم یه چیز دیگه آقا خاطرتون تون باشی ما یه گربه رو اگه از راه برعکس نمازش کنی چنگت میزن یارو کی بود؟ خسوه و دیگه دیدمش چیکار داشت؟ خارج از به دو این سازمان واسه خودش کامیون وار میکنه و میرسونه به دست مشترگی خارجش پس آدمش این نفوزیه داره اینا تمومه ولی این یکی دومش بشبسته به دو از ما بهتره. این اول حسن خانه توتون چیه نابخرت داده گوششو پیچوندن واسه همین هم داری تابان پس بیده. در افتادن با مشت به دیوار کفتنه دوره ریاست این عبالحسن خان کوتاه دایی جان کتاه خستو بهرگار رو با پرویز خیاط دیدم بیجا کرده به فرماییت خسرو خان از کار آباد خسرو خان چه خبر؟ اصلا مزاحمت نداشتم ولی اتفاقی افتاده که جنابالی خودتون در جریان ماوقع هستیم اجازه تا بر پیگیری اموال گمشده نیامدن. خانواده راننده ها همراه پاشنه در ما رو کندن. البته حق دارن. عزیزانشونه میخوان. یا دست می‌زنید یا پیگیری کن از شما بعیده. آداب معاشرت بلد نیستیم یا ما رو لایق ادب و احترام نمیدونیم وقت حوصله آشیر رفتن ندارم. آدم عاقل با شاخ گافت طرف نمیشه. صندلی که روشنفکری پایاش لق حضرت آقا. خیلی آروم پشتیدم. میدونی فرق آدم عاقل و جاهل چیه؟ آدم عاقل اعمال دیگران میشه عبرتش جاهل خودش میشه عبرت دیگران آدم آقل وقتی میتونه از تو از رو دیوار نبید پره که گردنش بشکنه من از دیواری کسی نپردیدم سرم به کار خودم <تصفيق> ما اینجا خودمون از آب کره می‌گیریم، از آلاغ مردار سنگم میکنیم میگو نمی کنیم آدم های مثل حضرت عالی از صده اشتاد فرسخمون ورتر. بیان اینجا نون از گلیمون بیرون بکشن مجدی داری با شیر بازی میکنی شیر اگه شیر باشه دومه رو دست کسی نمیده نه خوشم اومد نشون دادی که واسه خودت کسی شدی نقلم ماته که چی تو این آب و خاک تهرون هست که تو که پاش میرسه به این خاک فکر و خیال برش میداره یارو کیسه کش همومه از دادکوره میاد تهرون که دستباهی مردم رو کیسه بکشه. سر یما نشده میبینی شده تاجر پشم و پنبه. پنج تا همومم خریده دستگونم نمیتونی با نیزه به دماغش برسونی دوان داری میری جوون دیگه مثل قدیم نیست هر کاری روشی داره سهمی داره من قصد جنگو جدل ندارم حرف صد من یه قازم نزن من آدمامو میخوام کجا میری خان؟ حرفام مونده. فکر کردی توی این امرکت یه تاجره اونم تایی جناب مهرگان هر روز هزار تاین تا شما میون توی این اتاق هر کدومشونم کاسبی خودشونو دارن کاری به کار ما ندارن ما هم چوب تو سوراخشون نمیکنی. داری پاتو میکنی تو کفش رو ازوگتر داری چونوش خانشون قتلم میکنی من حقا تو دهن شیرم باشه بیرون میکشم قانون میدونه چیه دونه گردن که شیخ خانه خان بازی تموم شده الان امریکت یه دونه قانون داره و یه دونه پرچم من به پرچم و قانونتون کاری ندارم ولی من بودتا کار داریم من و رعیتم کار میکنیم عرق میریزیم مرتشو میگیریم بابت اینم به هیچ منی بشری باز نمیدیم تاجری که نتونه بالشو به موقع مقصد برسونه تاجر نیست. من آدمامو میخوام راه رسونن باران به مقصد خودم پیدا میکنم فقط میخواستم بگم که جلو ظلم من وای میکنم داری واسه من شاخش می میکشی بچه داهاتی راهو داری اجتماع میری من آدم همو میخوام شما هم فرصت زیادی نداریم آدم همو میخوام آدممو همو میخوام وزیزم داخلی شد تأخیلت ددم اتفاقی بود اتفاقی خیلی خوشحال شدم از دیدنتون. جناب خان من نمی فهمم این دسته تو به خاطر چیه بیدونی الان چند نفر آرزو داشتن جایی تو باشم. فرو، بذار من تو با هم دیگه دوست باقی بمونی خب تو که زن مهراد بشه که دوستی اون امیغتر و قویتر میشه تو مهمونی ندیدی شکو سلطنه چی گفت دست منو گرفت گفتی بی خدمتکار و ندیمه ای الان به اینجا رسیده من فردا پس فردا زن مهراد بشم به توقی با میخواد میخواب بزنه تو سر من بگی یادت نره سر از تختر رو بردی ندیمه ما بردی فروغ تو که می من یک اون با تحقیر زندگی کنم. دستفردار مهراد جونش واسه تو در میره این حرفا همش واسه قبل از ازدواجت. من و مهراد از دو تا خانواده متفاوته. دو تا فرهنگ متفاوت. دو تا فرهنگ متفاوت. مهراد واسه تو مهراد. مهراد. بابا بذار قهوهمون رو بخوریم. آ تو کلی اسب و خر و قاطر و داغون کردن از بین بردن. چه اعتمادی بین اوا خن از بکنه. هیچی؟ به این دولتی هیچ اعتمادی نیست؟ و چرا اجازه نمیدی برم جنازه عدیدزشون بیرقم نظرشون بکنم. حفت کن تورییا گاز حالک جد و پدر جتش بچشم بیرون؟ جنس خیلی مهم نیست. مهم نیست خام؟ بعدا بررسی میکن. یه اد کارگر بیچره برای ما بار جابجا می کردن. بعد پسشون بگیریم. فصل اسم صرفون زندگیشون یعنی چی؟ یعنی تو تونچو و اداره انحصار به حرف وعدهشون وفا دارن که احامت منچ با من ندارن الان طبق وعده آدم میارن صحیح و سالم تحویل میدن اگه حرفشون دروب و وعده هاشون بود چی خان؟ تلافی میکنی خودشون. هم. тому ну آقا آقا آقا اومدن اون برای شدار رزد بوسو بودو وبوشینگ. اول بیستادینه بیرم خوبه. برو اونی که بیرونه بدو. آله کو بیرو. هننیکامو خدی بودو وبوشینگ. اوشلا مو Tush. وقت طرف کارتون رو سریع بدون نقص انجام بدین تستورش داده شده آقا. تا خواهر بودن تموم شه. کشم سوخت. خامار رو زیر گونجو ورزدم. گاشم انداص. حالا سمون رسیده قرار بوده اسه ارتشی بیان اینارو ببره اینا ارتشی نبودن همون سوخته ها به دنبالشون دادا بای با شعیر های ساده و تعمدار آلیس آلیس برای خانواده جانم شروین جان سلام احمد جان امروز دیگه درسته؟ آره یه سال شد حالا برنامه چیه؟ کیک و دور همین برای تولادشم هم که همین کاری کردی این فرق میکنه خب فکر کنم همه اومدن امروز یه سال از رفتن مهناز میگذاره ولی همونطور که میدونین با رفتنش کاری کرد که چند نفر دیگه به زندگی بریم حتما یادتونه که قبول کردنش برای من چرا سخت ولی حالا دیگه از تصمیم خودش و خودم خیلی خوشحالم فکر کنم هر سال باید برای مهناز دو تا جشن تولد بگیریم یکی برای خودش یکی هم به افتخار زندگیایی که بخشیده اهدای اوز ادامه زندگی خانم شکیبا خانم شکیبا خانم شکیبا اوز میخوام مجدد مزهر نکنیشم میخواستم یه لطف کنین با من تا خونه پروفسور بیاین شرمنده نمیتونم با تو بیام اون آدرسی که به من داده بودین اشتباه بود مطمئن باشین درسته من خودم اونجا دیدمش واقعیتش من تهران خوب نمیشناسم لطف کنین با من بیاین من یه مریض تو بیمارستان دارم الان به کمکتون نیاز دارم باشه فقط اوتار بریم برگردیم چون من کار دارم ممنون ولی این مطلب میگه شما تو جراحی افسانه اید اینو گرش بزن افثانه مبالغه میکنید اون تحت عوض کن ما رو زمین زندگی میکنید نسبتی به این و واقعیت نیست شمایل ما میگیر نیست مطلبی که خانم نوشتن در مورد حقیر توی این جریده از روی وجدان روزنامه نگاریشونه ولی حقیقت اینه که من نمیتونم برگردم به اون بیوارستن یعنی رام نمیدن عمل جراحی شما هم حتما باید تو بیمارستان انجام بشه. حالا چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟ <متصف> یکی از دوستان من هست، تازه تخصص گرفته از فرنگ اومده. میگم اون عمل شما رو انجام جبران میکنم جبران می‌کنم. بعد 기다يدي نگران نباشید. اگر ایشون کسی رو تایید میکنن مطمئن باشین کارشون درست انجام میده. دکتره بیمارستان برخورده که ایشون پروفسور آورده بالا سر بچش. ولی زورشون نمیلسه چیزی بگن که پسر آقای مهرگانه؟ بله خانم مطمئنی سراج؟ بله خانم شکیبا، حسام مهرگان، پدرش هر روز بهش سر نمی‌زمه، مادرش چی؟ فکر کنم مادر نداره. چون از موقعی که آوردنش فقط پدرشی که بهش سر زده. به چشم برادری پدرش خیلی مرده خوش، خیلی آدم خوبیه. که آدم خوبیه. نه خانو قربونتون برم شما فروغ و زمان خانم هزار ما مردم رو پشت نورسی کنم به حساب نمیاریم که پس بی زحمت یک کار کنیم ما بگیرونو نوایی برسیم میری په کارت یا نه چشم خانوم چشم من که حرفی نظرم فقط لله همه افریسی همچی مردی با این همه کمالو تنها باشه برو په کارت برو شنیدم قضا تو نمیخوری بیلی به خوراک ندارم برسلم به تنگ اومده بیمارستان خیلی بده <تصفيق> اما باید غذا تو بخوری تا حالت زود جا بیاد خانم من کی میتونم برم خیلی زود خیلی خیلی زود این آقای دکتر رو دیدی عوضیمش بالای سر تو که حالت تو رو زود زود خوب کنه اما یه شرط داره این که تو بخوری دارواتو به موقع بخوری پسر گلی باشی که حال زود زود زود خوب بشه قضا اینجا خیلی بد مزدست خودت بد <تصح> <تصح> دروغ میگه خالن شکی با اصلا مزده نمی کنه که بفهم خوشمزدست یا بد مزد تو برگشتی؟ از وقتی این جون اومده اینجا من این پروانه دورش میگردم البته اگه به گوش خانم دکتر مصطفی نرسه فکر کنم اگه براش غذا بیارین الان میخوره مگه نه معلومه که میاره چه پسر ماهی لنگه ی باباشه اگه یه موقع یه چیزی لازم داشتی به این خانم پرستاره بگو برات میاره باشه تو سر میشه الان نری آخه خیلی کار دارم خواهش میکنم باش چند دقیقه میمونم <تصفح> <تصفح> در روز بهوش نایی خوبه عالی خطر رفت شد پس چرا بهوش نمیاد. میاد یکم صبر داشته باشی دفتش قصص میکنه درست میشه هرچی از خدا میخوای بد بده دخترم تو رو خدا خوبش کن سلام خوام دکتر شربتی که براش نمشم از دوا خونه بگیرید سه بعد در روز بهش بدید به نباید جنوان نبعد قض تا وقتی اینجاز حواسمون بهش هست ولی یادتون باشه وقتی که اومد خونه بعد شما مارقه باشید به ایج آنوان نباید از جاشبا نرشه چی شد آقای دکتر ایچی عملش کردیم حالا بعد چپار تونیم حالش خوبه بعد منظر باشه حالی جا بیاد نگرانیم مهزمم از, از اتون پاپسیم بیا بیم اما تو کار دارم بیا شما را برسید معرفی کرده چجری با ششنه این؟ ترون شیرتوشین شده آره، بلی نه آی، این قلق های با تو هم این میکنم چون میدونم مریض داری وگه نه دیگه مثل خودم ما میزنم ببین دومه تو میزه رو کوله از برمی گردی همون که اره. و همون یک ازش امادی اری دست کردی تو لونه زنبور افتادی دنبال ناموس مردم په کش ارته با بعد کسی داری شخ تو من که نفهمیدم این مباحثه در چه خصوصه؟ در خصوصه عملی که رسو بیشتر منزه. بکرر هر, کی هر کیه؟ مهربانم. من جواب باکش تا. دوست دوسامش بهم. یه بار دیگه طرف خودش. خونش، محل کارش رو اصلاً دست نمیش دارم. اون وقت کیشی؟ باباشی؟ دنداشی؟ داداشش؟ شوهرشی، برو به سرت برو. اصلاً نفهم چی میگه. که تو مراد حالت جانی، حواست نیست، فاش. ناراحته بارو تحتیش در دیگر خوب برای. آه آقا خوش اومدیم خوش اومدیم ام میخواین بگیم چی شده آقا همه مطمئنم یه چیزی شده که حال شما انقدر خرابه دیگه فقط نمیخواییم به ما بگیم تو غیرت داری؟ جان اصلا تو مردی؟ حالی تو غیرت تو جوری حاجی آقا این چه نقل و کروم آخه اصلا میدونه مربانو با کی داره اشونش میکنه؟ یا رو میشنسی؟ آقا با کسی هشونهشی نداره من صرف شما رو نیم ولی دیگه داره من مر میخورم من دهنه تو به مر میخورم بهروز بگو آقا تشریف بیاره هندونه قاش کردم این عسل. ماشین کجاست؟ تو گاراجه باشگاه میتونی یه مدت دستت باشه ها که چطور باشه؟ طبعا هم می‌گم یعنی دستت باشه ازش استفاده کن که مدرد کاراتو باش انجام بده چه که آقا گفتم ماشینشون دست من باشه ای بابا دختر هستم معنوم تصفت کجاست. میام آقا می‌خواه درم دنبالش سلام خانو خوش نومدی بفرما سلام سلام خواستم چند لحظه مصده اوقاتت بشم بفرماید داخل نه همینجای مختصر کلومی است بهتون میگم و میره بفرمایید ببین من نیومدم آهونالا و اعتماس رو از این کارو بکنم که در شهند من و خونوادم نیست فقط یه دینی به گردن اومدم ازش خلاس دین؟ این اگه ای کسی به من دل بده تا آخر دنیا دل دادش میمونم هر جون نازو عدوشم میخرم ولی اگه دلت با من نباشه زور که نیست هست الان عصبانی هستی بینام یه چایی برزم با خلی حال حالت جا بید. نه خوبه همینجا حرفامو میزنم خدا شما رو به خسروخان خسروخانم به شما ببخشه چی شنیدم؟ چه اسم این آدم رو میکشی بس؟ اسد؟ نخواه کفتر چندون بشی که, چند که میمونی مشین قهوه‌روکس، ماشین کولتو بز بالا. تر سرتو بکش زیر خاک نمینی دور برای چه خبره؟ میادم، آدم دورو نه چند روز داره. به من رابطه نرو ببین شما اون چی میگذره. آ قدیم گفتن آفتاب اگه از جاش تو خلاص. شما داری خیلی تم میری. من نه شما؟ منم یکی بگم یکی بشنافن. اومدم بهت بگم با آدمی طرفی که اگه فهمیدی زودتر خر لنگ تو آسو گلهای بدبختی و بدنامی رو کشی بیرون. با آدمی طرفی ابایی از آدمکشی و کتککاری و سوزی رو انداختن نداره. با آدمی که دستش به است. خواصه خود میباری یا میدوزی فکر کردی میرزا همه چیز دونه تهرونی؟ خواب فردا شبم امشب میبینی؟ آره هستم. اون موقع که بهم گفتی تو فکر ازدواج نیستی، شرایطش رو نداری، ناراحت شدم ولی عصبانی نشدم. بهت حق دادم. ولی الان میفهمم که با من بازی کردی. که پش دکتر مردم حرف درست می‌کنی راهه ترکستانه. شما خودت ساکون. بس خودش حرف بزنه. هیچ‌چی بین شما اونتازه به دوران رسیدنی نیست. نایی همشتا چی رو به هم نبافی پس هست یه هست یه هست آدم باید چشمش باز باشه هر خاکی رو هم نمیشه به سر ریخت این آدمی که سره پیری حواس جوانش گل کرده کمتش تش میلنگه سرکان خانو چش پسته جلو نرو ریزو درسته به با هم میبافی میری؟ چند تا گفتی؟ حالا واسه چند تا هم بشنو من و شما دیگه با هم بیاسابیم دینیوی گردنم بود که خواستم با گفتنشو ادا کنم اینو انگشتی بود از خروار. شما خواه پنگی رو ملال. شما بفهمی؟ چون بفهمید من خودم پیگیر میشم ببینم چی شده که شما این چه خیالاتی کردی بفرمایید it's home.